بخش دوم هر جامعه ای درباره عقاید بایسته فرد و چگونگی رفتار او برای اجتناب از قرار گرفتن در مزان اتهام و عدم محبوبیت نظراتی دارد بعضی از این رسوم اجتماعی به صورت قانون حقوقی درآمده و صورتبندی بندی صریحی بقیه آنها بیشتر به شکل شهودی در مجموعه وسیعی از داوری های اخلاقی و عملی مندرج هستند که عرف عام خوانده می شود. عرف عامی که فرمان می دهد چه باید بپوشیم چه ارزش‌های های مالی را برگزینیم، به چه کسی باید احترام بگذاریم از چه آدابی باید پیروی کنیم و چه زندگی خصوصی باید داشته باشیم شک کردن به این آداب و رسوم عجیب حتی گستاخانه به نظر می رسد. اگر در عرف عام تردید نمی شود، به این دلیل است که داوری های چوان بسیار خردمندانه از آن شمرده می شوند که شایسته مداقب و تعمل باشند. برای مثال، به ندرت خوشایند و قابل قبول است که در جریان ای معمولی از عقیده جامعه خود درباره هدف از کار پرسجو کنیم. یا از یک زوج تازه مزدوج بخواهیم دلایل اصلی این تصمیم خود را به طور کامل شردند یا از گردشگران بخواهیم مفروضات اصلی سفر خود را به طور مشروح بیان کنند. یونانیان باستان نیز به همین اندازه رسومی مبتنی بر عرف عام داشتند و به همین اندازه سفت و سخت به آنها عقیده داشتند. در یکی از روزهای تعطیل آخر هفته، در حالی که در یک کتاب فروشی دست دوم در برامسپری سرگرم وارستی کتاب ها بودم به مجموعه از کتاب های تاریخی برخوردم که در اصل برای کودکان نوشته شده بود و تعداد زیادی عکس و تصویر زیبا داشت کتاب های این مجموعه عبارت بودند از نگاهی به درون یک شهر مصری بیاندازید نگاهی به درون یک کاخ بیاندازید و نگاهی به درون یک شهر یونان باستان بیاندازید که آن را همراه با دانشنامه گیاهان سمی خرید در کتاب سوم درباره لباس پوشیدن به در دولت شهرهای یونان در قرن پنجم قبل از میلاد اطلاعاتی وجود داشت. این کتاب شهر می که یونانی ها به خدایان زیادی عقیده داشتند. از جمله خدایان عشق، شکار و جنگ، خدایانی که محصول آتش و دریا زیر فرمانشان بود. پیش از شروع هر کاری، آنها در معبد یا عبادتگاه کوچکی در خانه خود، در پیشگاه این خدایان دعا می کردند و حیوانات را به افتخار آنها قربانی میکردند این کار گران بود آتنا به یک گاو میارزید آرتمیس و آفرودیت به یک بز و آسکلپیوس به یک مرغ یا خروس یونانیان نسبت به تملک بردگان خوشبین بودند در قرن پنجم قبل از میلاد تنها در آتن هشتاد تا صد هزار برده وجود یعنی یک برده به ازای هر سه نفر آتنی آزاد یونانیان روحیه نظامیگری شدیدی هم داشتند و شجاعت در میدان نبرد را میسودند هر مردی تنها زمانی مردی کامل شمرده میشد که بداند چگونه سر دشمن را از بدن جدا کند سربازی آتنی که به زندگی یک ایرانی پایان میداد مثل نقاشی مندرج بر لوحه‌ای در زمان جنگ دوم آتنی ها با ایرانی ها رفتاری مناسب و مطلوب انجام داده بود. زنان کاملا زیر سلطه همسران و پدران خود بودند. آنها هیچ نقشی در سیاست یا زندگی اجتماعی نداشتند و از حق ارث بردن یا پول داشتن محروم بودند. زنان معمولا در سیزده سالگی ازدواج می‌کردند و پدرانشان بدون توجه به سازگاری عاطفی برای آنها شوهر انتخاب می‌کردند. به نظر معاصران سقراط هیچ که از این امور عجیب نبود. اگر از آنها می‌پرسیدند، دقیقا دقیقاً چرا خروسها را برای اسکلپیوس قربانی می کنند؟ یا چرا قتل برای بافضیلت بودن مردان لازم است؟ شگفت زده و عصبانی می شدند. این سؤالات همان اندازه ابلهانه به نظر می‌رسید که به چرا بهار پس از زمستان می آید؟ یا چرا یخ سرد است؟ ولی فقط دشمنی دیگران نیست که ممکن است ما را از شک کردن در وضعیت موجود باز بازدارد. میل ما به شک کردن ممکن است درست به همین شدت به وسیله این احساس درونی تضعیف شود که رسوم اجتماعی حتماً پایه و اساس درستی دارند. حتی اگر دقیقاً ندانیم این پایه و اساس چیست؟ زیرا بسیاری از مردم مدتی طولانی به آنها پایبند بند بودند، نامعقول به نظر می رسد که جامعه ما به شدت در عقایدش دچار اشتباه باشد و فقط ما از این امر آگاه باشیم ما شکهای خود را فرو می خوریم و از گله پیروی می کنیم زیرا نمی توانیم خود را پیشگام درک حقایق دشواری بدانیم که پیش از این ناشناخته بوده است برای کمک گرفتن به منظور قلبه بر ترس و بزدلی خود می توانیم به صبرات روی آوریم